گرج چی گرج وجود تو خانه تو، اتیام در دمانت، زهر آج، کلم اگر چه یا خنده تو سرین زخم پایدار علیم بیشنا سیمن و زهرات جو منم قریب کریل مرد روزگار علیم پرنس خور تمال از همین تجلیها چقدر بی محلی دیدم از محلیها پرمنی چی گفتم برغم بی رام هم کلامی کن طلای اقل به من لمس سلامی کرد، اشکی جواب سلام همونم می جان ولی وقتی که زدن همیشه می دونم جلوالی سلام می قرر روزه شوم قریمان سخت خوندم حالا چجوری من بگم شما چجوری میخوای گریه کنیم زهرا جان دلیل شادی من دیگه من دل خوشی که دلیل شادی من قبل شین قبل شبیه پیر زن سال خورده خم شده ای به ماتمه دستا سا دوچار نکن خودم برای تو نال می تو کار نکن آخه روز آخر نمشه بوده شد هم نون پخ همه بچه‌ها غذا داد هم خونه رو جارو زد علی وقتی اومد خونه دید خونه خیلی مرتبه گفت خدا شد خانومم بهتر شد شنیدم بهتری علا حبدالله جدا از بستری <S Schmidt> جور دیگه هم میخواستم بخونم ولی اینجوری دارم میخونم که شما راحت داد بزنید من مدینه بودم شما هم رفتید اصلا نمیذارن که ناله سری میاد تا میبینن یه گوشه ایستادی حتی آروم هم داری عشق میریز سری میگه برو اما این جراعت میتونه برادگریه کنم امشبت جاهای علی و سینا رو تو در میکردن آه آه کلاهی فهمو جان تنور گرم برای پر. خطر دارد برای سوخده هر شلعی زرر شکوه خاکانخ امیدش خراب شده در تو آب رفته ای از شم شده هیدر می اومد برا زن زهراش می علی رو هلال کن علی رو هلال کن علی رو هلال کن هرکی برا دبا هم بخونم هلال کن چون حیدن نی اومد می زدن لیت کاری زدستم زد بر نیومد نه به منه حلالم کن شد در نیومد میزدن این یکی خیلی میکشه همسایه ها دیدن صدا شد در نیوم هلالم گل بلدی <تصفيق> علی را هلال کن واسه درد علی را حلال کن واسه درد پهلوت علی را حلال واسه دست بستش نتونسی بردار اون در رو شنگاذن اجازه دارم برم جلو <تصفيق> علی را حلال کن که موسی فدا شد علی را حلال کن به حال جفوج علی را حلال کن ترایمون روز که پای مو غیره به این خونه واجد جانم هرکی بلده ساکت نباش فقط زهراجال قلوب آمد خونشیدوار دور شدی. لاشیده بودی و یک دفعه جمع شدی بیا به خواهش من گوش کن بلن نشد به التماس حسن گوش کن بلن نشد بلن نشد آقای زنی که بچهش رفته میگرد تا چند روز صلاحت کنیم هم از نظر جسمیم روحی آزیب دیده <تصدقالت> آه بعضیان نفهم بیده چی گفتن خدا رو شو. آه, آه،, آه چشم هسل نز لبر میوارد هنوز گوشوار را دارد با خودتا میانه کوچه جرایش بود تمام صورتت تو نصف دست بود چه زر بیم به تو زد آن حرامزاده پس سمارت شده اما هنوز رده آخ زماه رد شده اما منوز ردش هست سماه می شود این سر بی شده سه شود این خانه بی شده ببخش فاطمه جان پشت در تک افتادیم تا سر باید باید همین گریه کنی <تصفيق> این شب همین جوی که قوس میداد فاطمه شایی همین حرفارو میزن گفت به بخش فاطمه جان پشت درم تکف دادی تمام هستی خود را تمام. تمام هستی خود را برای من دادی تو رو خدا ببخشید من از ماموز... خونه ماموزمان من هم چه نبود تو خونه ماموزمان چه حرفایی تو رو خدا حلال کن یکی نگفت به دیوار بی پناهی تو یکی نگفت خاک به دهنم. یکی نگفت به دیوار بی پناهی تو یکی نگفت به مسمار پا به ماهی تو شما داد بزنید دا. کاری به من نداشته باشید شکست آینت سنگ شد مسمم اشاره اشارکت به قنفوز مگیره مچاتم شکر کنم ملیشون از من خودم پات جلو چشای حسنت شما هم بخونید ها. من میخوام گریه کنم زدن <تصفيق> زدنه جلو چشای حسنت ناهلت الجست شدید چقدر میلرزه بدن درد میکشید همش آه میکشید تو هرچی درداری و از قنفوز نامد آخی یادم نمی روید حرف آخرم ما هر جور میخوای ناله بزنی یادم نمی رود که همه داد می زدن تاری بزن تاری بزن کلی علیبی پزر جوان من برای شما روزه بخونم شم. این ببینید داری گریه میکنی یه وقت فکر نکنید مادر ما پیر زن بوده ها. باورتون میشه مادر ما هیچ ده ساله بوده چگاه یه جا دیل داره میره یه جایی بازم یه سه سال من زراغ دارم به جرمه این ندارم پدر زدن مراب شبیه مادر در پشت در زدن مراب شبیل تش شبیه نیزه در ترات که در شب اصلا چیه؟ تصور كناآ تو ذهنت تنهای امیرلمونی نشسته سرشو گرفته به تابوت هم وسط خونه ای خدا چیكار كنم کسی نیست کمک م كنم صدا هستنم حسنم و برو سلمانو خبر کن سلمان بیاد سلمان میگه تو خونه نشستم ما هم دلمون به هم ریخته بود الان علی تناهی شکا میکاد بکنه یه بودیدم در خونه رو میزنم قلبم از جا کنده شد بودو بودو اومدم در رو کردم دیدم امام هستر سر, سر به نمار گذاشته سلمان بودو فقط برست به داده بابا <تصف> سروان میگه اومدم تو خونه دیدم شوزای سرپای امیرالمومنین به ریخته است خونه به هم است حسین ترا زینب ترا علی ترا تابوتم وسط حیات خود است امیران دیدی که داغ میبینن یا رفیقشون رو میبینن گریهشون میگیره تا چشمش به سلمان خود سلمان رو بغل کرد اینقدر دوتایی ای گریه کرد <صحیح> سلمان دیدی چه خاکی به سر علیشو که <صحیح> <صحیح> <صحیح> من حلی کردم زیرتا بود تو دوتایی گفتی امیر جلو منم اقب بچه ها دستگردنم کردن امیر المومنین گفت بچه ها قول باید بدید آه. به بابا قول بدید چی بابا؟ گریه نباید بکن باشه بابا فقط اجازه بده ما هم بیان <تصفيق> قول باید بدید به بابا <تصفيق> <تصفيق> همه یاسینا رو کردند، کردن عقب تابوت دارم میان آروم آروم امیر آروم آروم داره زمزمه میکنه به عزت و شرف لا اله الا الله، محمد از رسول علی بریان ما سلمان میگه یه نقطه از کوچه که رسیدیم همه بچه ها معمور به ولی یه نقطه از کوچه که رسیدیم دیدم ما سر رو زندگیین نشاد دستاجر رو سرج گذااجهداره داد میزنه میگه مادر زیربا غللایه هستن رو گرفتم راحت نبدیمجوری بشین ها؟ زیر بغلای حسنو گفتم حسن جامنگه قلب مواد ندانید صدا زد سلمان دست به دل حسن نگذار این چیزی که من اینجا دیدم هیچ این هیچی از ندیده سلمان به یک زربت دو سیلی خورد زهران. بعد بزنی خودتا به یک زربت یکی از در به دست دوب والی سلمان بود یه مرد مادرم نقش زوید یا زهران یا تو سا ما این روز‌ها یه بی رحم، هیچکسی مثل مادر حالا مالمی فهم، مثل مادر حالا مالمی فهم هیچکسی مثل مادر حالا مالمی فهمم رمونتون برم بباشید منم بیاد همی میکنم شایلا حاج ها بیاد ادامه بده منم بین شما سینه بزنم وقتی سهمم از دولیان این روزای بیرحمه وقتی سهمم از دولیان این روزای بیرحمه ایش جسی مثل مادم حالمو نمی فهمه ایچ جسی مثل مادم حالمو نمی وقتی سهمم از دنیا این روزای بی بگو وقتی سهمم از غم خب شما نو به خونی دا ایش شاسی مس مادر حالمون میفهم ایش شاسی مس مادر حالمون میفهم سایه چادرش پناه عالمه سایه چادرش پناه هر هرچی خدا رو شک کنم بازم هر هرچی خدا بازم کمه آخه شدم گدای خونواده علی و فاطمه سایه چادرش پناه عالمه سایه چادرش پناه عالمه خدا رو شب بازم کمه هرچی خدا بازم کمه آخه شدم گدای خونواده علی و فاطمه در این خونه به خدا حال من خوبه میشه در این خونه به خدا حال من خوبه واسه آدم هیچ خونه ای خونه مادر نمیشه حاله این خونه به خدا حال من خوبه میشه واسه آدم هیچ خونه ای خونه, ای خونه ای مادر نمیشه ونه یه مادر نمیشه یا زهرا یا زهرا یا زهرا دو دست و دست زهرا یا زهرا یا زهرا خامشم هم بخونید آن وقتی صحبت مزدولیا این روزهای بی رحمه ایش چه مادر حالا من هیچ جسی مثل مادر حالمو نمی سایه چادرش پناه عالمه, عالمه هرچی خدا رو شک کنه هرچی خدا رو شک کنه ما آخه شدم گدای خون واده علی و فاطمه،, علی فاطمه در این خونه به خدا حال من خوبه همیشه در به خدا حال من خوبه همیشه واسه آدم ایچ خونه خونه مادر خونه مادر نمیشه یا زهرا یا زهرا يا زهران یا زهران یا زهران, زهران قربون شما سین زنا نوکرا پیر خلاما جونا نو جونا یا زهران یا زهران در مقابل لطفت عش من پرکاه در مقابل لطف اش من پرکاه بی نگاه تو قلبم می بی, بی تو قلبم می عشق علی تموم اعتبار من نوکریه حسین تفدخار من نوکریه حسین من گوش نگاه حسن اتوا می کنن گره از کار من گره از کار من اگه افتاده تو دلم قم دنیای بی اگه افتاده تو دلن قم دنیای بی کسی مادرم زهر آخرش تو به یادم میرسی اگه افتاده تو دلن قم دنیای بی مادرم زهره آخرش تو به فریادم میرسی تو به فریادم میرسی یا زهره یا زهره یا زهره چرا زهره یه زهره اشکا یا زهره <تصال> <متصال> آقا ما رو ببخش سخت روزه های تو طاقت منو برده سخت روزه های تو طاقت منو برده باورش برام سخته مادرم کتک خورده باورش برام سخته مادرم کتک خورده خدا میدون خیلی سخت واس من این که تو رو تو کوچه بی هوا زده خدا میدون خیلی سخت واس من این که تو رو تو کوچه بی میگن با صورت افتادین روی زمین جلو چشم حسن جلو سورت ریحان کجا دستای مردون کجا سنت ریحان کنجا دشتای مردون کجا حسنت فریاد میزنه حسنت فریاد میزنه دیگه دست بردار بی حیام صورت ری حال کجا درستای مردون کنجا حسن فریاد میزنه دست بردار میحجام من ایستاده بودم دیدم که در افتاد حسن ناله میزد بابا مادر افتاد تو افتاده بودی در روی بازود دیدم هر کی رد شد لگت آلت آزاد کن فریاد بزرد Yo Zahra. کسی ساکت نباشه همه همه نوع خون بشن مادرم چان تو سایه سران امید اول و اخرم داری تو قلب علی حرم فاتمه مادری کردی برا همه خوب می دونم فاطمی یا برا خودش یه محرمه پادرم چان دور تو سایه سرم امید ولو خرم داری تو قلب علی حرم فاتمه مادری کردی برا همه خوب میدونم دونم یا برا خودش یه محلم مادرم سلام ای همه بابرم سلام همه جاپه مزارتم ای مادر بی حرم سلام مادرم سلام ای مادر بی حرم سلام ای مادر بی سلام ای ما در شما بخونید آه مادرم سلام، ای ما در همیار آم سلام. آشکار نام سینازان، آسمان همه شلوت و تو وقتی رام میکنن همه. به تو خوش دل مهوری همه یزدی حیدری میدونیم از ده حسینتی که داتون کرولا میبری نور حلاتا ذکر یا من اسم و پناه دلش کستمین ای مادر شای کربلا مادر سلام ای مادر بی حرم سلام ای مادر هم زکرشو بگیریا. سلام کربلا خونه اول نکرا که میگی من نمیشم باش س سنگ هر کسی ساکت نباشه چرا ولا خونه اولننا کرا گریه کنه تو پیم برا سری تو از همه سرا شاه من دلیل گریه و آه من عشق تو را نجات من پرچم روز پناه دل برم حسین ذکر دم آخرم حسین تنگ دوباره دل گداد برای تو و حرم حسین دل حسین ذکر دم آخرم حسین ذکر دم آخره مسین زکر دم آخره سین سین سین سین سین سین سین سین شاید هم کسی ساکت نماشی شهدارو محمول کن خوشان روزی که ما در خاله مادر داشتیم دیده از دیدار رفصارش منور داشتیم ای خوشان روزی که ما در خانه مادر دوشید دید از دیدار رخسارش منغور دوشید هر کسی چه سمری روز ما که جسم مادر خود را به شب برداشیم ما که جسم مادر خود را به شب, برداشی را به شب برداشی کاشان روزی که مادر گفت پهلویم شکست کاشان روزی که مادر گفت پهلویم شکست مادم در حق حفظ چان مادر داشتیم مادم در حق حفظ جان ما کاشان روزی که تنها مادر ما را زدن شوم قرمی دیگه بشتر از این از من انتظار نداشت آشان روزی که مادر ما را زدن ما یکی را یکی را یکی را در میان خوشه‌ی آب‌رداشته ما یکی چه داشت کاش مسران نمیکششت تا موکن چین یادگان از آن گل <سؤال> رنا پر چون سواد چه دانیستی بی‌مو در شدی چای قشش بخا که تیر بست ناشید وا ویلا تو وا ویلا تو O